طرف از راه دور اومد مدینه خدمت امام سجاد نشست حضرت موعظه میکردند ایده رو موعظه که تموم شد اومد دست آقا رو ببوسه عرض کرد آقا جون ما رامون دوره دوستهای تو اطرافیم توان نداریم مرتب بیای مدینه پای بحث شما باشیم بعضی دوستاران شما تو روستاهای خودمون تو بیابونا دوره هم جمع میشیم حرفهای شما رو تو خودمون نقل میکنیم مسائل شما رو با هم بیان میکنیم ولی چه کنیم که نمیتونیم بیایم اینجا حضرت فرمودن من اگر اونجا بودم کبشاتون و براتون جفت میکردم اللهوهی من اگر اونجا بودم کبشاتون براتون جفت میکردم چون جمع میشوید در یک فضایی که از خدا بگید از دین بگید